دستجو. دو ساعت بعد میر جواد آقا زار در خانه دای را میزند ندیدیش دای رعنا؟ روم سیاه خالو جواد نه ندیدمش از خانه حسن پنجره شیون زینب میآید. دایه همه جا را خوب گشتی؟ ها به خدا گشتم حتی پشت تنور زغال بالا کنیسه چی؟ بایی پادر دوم نه نه؟ همزه بیا می گم بگرده از دور صدای تیاره میآید. میر جواد آقا و دای به آسمان نگاه میکنند. دو ساعت قبل حسن پنجره باخچه را بیل زده بود که و ریحان بکارد زینب گفته بود وقتش گذشته حسن زحمت بیخود خود خاک باغچه زیر و رو که شده بود حسن پنجره نارنجک را دیده بود. بیا زینب بیا ببین ای چیه؟ زینب آستین چه به دست از پای تنور رفته بود و دورا دور زیر و بالای نارنجک را نگاه کرده بود و گفته بود ما چه می دونو مثلا؟ از زیر سایبان از پای دو چرخ نگاه کرده بود و گفته بود سب کن ببینو بابا مثل ای که و بعد روغندان را گذاشته بود زمین و پیش آمده بود بوی نان سوخته آمده بود و زینب تند برگشته بود پای تنور حسن با توکه چاقو خاک و گل نارنجک را تراشیده بود و بعد شیارها را خراش داده بود و گفته بود برنج انگار زرده دسته نارنجک زنگ زده بود و سیمان شده بود به بدنه نارنجک الماس دست روغنی را پاک کرده بود و گفته بود نه تره که بابا نارنجکه حسن پنجره گفته بود و وقتم که نارنجک باشه باروتش نم کشیده خیسه بعد نارنجکش را از دست چپ داده بود به دست راست و سبک سنگینش کرده بود و گفته بود یه کیلو بیشتره نه؟ و لبخند رضایت زیر گونه های پهنش خط انداخته بود انبار قرازه های زرد و برنج روی بام بود کنار کبوترخانه که جای قرازه های بود. خریدار قرازه های مص امو مسگر بود. کسی صداش می کند. امو پیرالی! بر می و می که یاور است. ایستاده است میان چارچوب در خانه و رو ترش کرده است. صدای زنها از اتاق بزرگ میآید. آید. بیبی بی سلطنت زن امو آوازه می گرداند. زینب زبان گرفته است. وای وای نخل بلندام وای وای اما پیرالی میداند که زینب به گونه ها و زنها دورش نشستند و به سینه می کبند. اومدم یاور میگوید؟ یه چیزی هست بعد توف می و بعد عدسه می کند مردها توی حیات جابجا به جا ایستادند. یا پای دیوار چندک زدند و سیگار می‌پیچند و سیگار می‌کشند. بیل تو خاک زیر و رو شده باغچه نشسته است. دو چرخه زیر سایبان روزین و روز سکان چرخایش به هواست. بچه‌ها سه تا یا چهار تو کوچه دم خانه ایستادهاند. کشته حسن پنجره تو اتاق کوچک است. اما پیرالی همراه یاور می‌رود. یاور همسایه روبروست. بیژنگ دنبالشان راه میافتد نصف نان لوله شده ای دستش است با لپ پر میگوید؟ بابا منو میام؟ یاور برمیگردد و می زند پس سرش کجا؟ میخوام ببینم؟ با لگت میزندش سیم نماس که میخوای ببینی؟ بیژنگ ه میکشد و برمیگردد پیش بچه ها. پشت لب بیژنگ همیشه از مف سوخته است و سرخی میزند. اما امو و یاور از پله ها می روند بالا. می روند تا پای دودکش مطبخ. امو پیرالی می که پار گوشتی خونی به قدر یک بند انگشت چسبیده است به دودکش طرف قبله. اخ می کند. شیون زینب میآید. اما امو پیرالی می که زینب به سینه لخت میزند و گونه ها را چنگ می اندازد. راه می‌افتد و میرود آن سر بام از بالای چینه سر میکشد تو خانه ملا براتلی دیوار مطبخ ریخته است درها همه بسته است کف خانه پر است از برگ خشک کنار گربهی رو آب سبز حوض باد کرده است و پای کنار کهنسال که گلوله‌ای به زمین نشسته است که عمل نکرده باید گلوله‌ی توپ باشد امو پیرعلی برمیگردد پای دودکش قلم تراش را در میآورد. پوست پیر دماغش چین می گوشت را و له شده را از رو کاهل تو دستمال. بعد آب دهان را قورت می و می‌گوید: چشم مبور یاور ببی ای چیه؟ و با تو که قلم تراش فلس شکسته ی رنگی را نشان می دهد. یاور عدسه می کند. بعد توف می اندازد. ما چه میدونم اما پیرعلی و با باز تف کند خوب نگاه کن یاور ناخن نیست چه میدونم بلکه تم هست اما پیرلی دستمال را میبندد و پیش رو را نگاه میکند صداش خسته است با ای حساب از طرف رفته شمال یاور میگوید شمال تا کجا امو پیرالی میگوید چه می دونم یاور تا دور تا نزدیک یاور می گوید دور یعنی تا خیابون نادری مثلا امو پیرالی ساغه خسته گردن را راست می کند و تا اونجا که نه همین یکی دو سه کوچه تا اسجدی مثلا الماس کج می کند تو خیابان اسجدی در خانه خال خوشقدم باز است الماس با سکه 5 میزند به درم. کسی نمی آید صدای طیاره میآید از دور بعد انفجار گلوله توپ ضد هوایی زمین را می درزاند. الماس با آسمان نگاه می کند. خط گلوله پیدا است پیدا نیست باز با سکه میزند به درم. بعد یا الله میگوید و میرود تو میبیند که خال خوشقدم نشسته از کنار کندال میان خانه و به آسمان نگاه میکند. ماهی تاو دستش است. خانه بوی سیرداغ میدهد. ته کندال علف رویده است. خال خوشقدم انگار که سایه الماس را دیده باشد سر بر می‌گرداند. الماس می گوید سلام خاله. الماس تونی، علیک سلام. رو شقیقه های خال خوشقدم جای نیش زالو پیداست، تازه است الماس بلند میگوید ها خال منم چیزی یعنی میگم که چیزی تو خانه ندیدی خال خوشقدم خس خس میکند چیزی که نه الماس شو کلمندل میاد ای بخوام خودش میخره صدای الماس بلندتر می شود تو خانه خاله روبون چیزی نیفتاده؟ خاله خوشقدم نفس تازه میکند. چیزی؟ یعنی چه؟ شیون زینب تا خانه کلمندل نمیآید. دور است. خورشید غروب میکند. چشم الماس خیز است. نرمه دماغش خیز و سرخ است. روغنی است. هق هق میکند. سر بر میگرداند تا دماغش را بگیرد. میبیند که باد افتاده است تو دامن دشتاشه ی و از مقابل در خانه میگذرد. پا تند میکند. زارتاییمه! باد تند میشود. کوچه پر میشود از خشخش برگ و کاغذ. زارتاییمه دست به کوبه در میستد. چفیش با باد آشفته شده است. جانم الماس کیفک خوب؟ چی بگم زار طیمه؟ بس چه گریه میکنم؟ کنم، نجمه می آید، پریشان، زار تایمه بر به زنش، کجا بودی نجمه، صدای نجمه گرفته است، منزل زار حسن بنا تایمه به گونه های سیلی خورده ی زن نگاه می به چشم تر الماس نگاه میکند، کند، صداش میترکد هلماس ولک چی شده و چفیه را از سر بر می دارد و پاتوند می کند روز شنبه حسن پنجره را دیده بود دمدمای غروب بود خط فشار قوی را زده بودند برق نبود رفته بود از ارون بقال فتیله چراغ بخرد حسن پنجره نشسته بود دم دکان مشعرون و نوشابه گرم می خورد. دو شیشه خالی پیش پاش بود و سومی دستش بود با حسن پنجره روبوسی کرده بود خان جنم زار حسن به سلامت ورگشتی؟ حسن گفته بود که دیگر طاقت در به را نداشته است آه برگشتم زار تایمه جون به سر شدم چقدر آدم بیکار و بدتال چشمش به دست و باشه چقدر از ای شهر به او شر، از ای اردو به او اردو خفت و خاری مشعرون بقال گفته بود به چه بزرگشم خود جبه هست؟ و کم وقتی میاشر میبینش زار ایمه گفته بود تاهر رفته سربازی؟ حسن گفته بود اوه سه ماه قبل عید زار ایمه حالا پنج ماه میشه رفته بیشتر شش ماه زارت عیمه. با کریم آقا رفت کریم آقا بنجواز آقا؟ میرجواد آقا سوختزار دم در خانه چندک زده از فانوس های مرکبی را میگیراند. بچه ها دورش ایستادند. باد یک هوم میفتد. شیون زینب میآید. گفتم توی هل هل گرما هسن. گفتم توی جنگ واویلا. ورگردیم چه کنیم حسن؟ وای وای وای هسن هسن. زارتایم می رود تو. یاور ایستاده است کنار باغچه و چشمش به کاکل شکسته و سوخته نقل است و سیگار میکشد. براتلی و خدارسان رو پله اول بام نشستند. توران خانم زن میر جواد آقا می یخ و گلاب میآورد و کاه گل خیز می کند. صدای زینب آشفته می شود. وای وای وای ورگشتی ورگشتی بچه یتیم یه تیم کنی؟ زارتایی مچ یاور را میگیرد. گیرد. نارنجه کجا منفجر شده؟ از دور صدای انفجار پی در پی میآید؟ توب می آید. بوی کاه دود می جایی انگار الافزار پشت خانه ها می سوزد. وای وای وای باروتش خوب خیس بید حسن؟ وای وای وای, وای. دو ساعت و نیم قبل حسن پنجره شیارهای نارنجک را با چاقو خراش داده بود. بعد برگشته بود به زنش گفته بود ای گازنبور کجا آن زینب؟ دست تو اتاق بود. تو کشوی میز خیاتی. دست را برداشته بود. سیگارش را به لب گذاشته بود و گیرانده بود و راه افتاده بود برود پشت بام. صدای زینب پشت سرش آمده بود. نمیدونم سیچه سی بیقراره، حسن دلت بده و حسن ششتانگ حواسش به نارنجک تو پلهها ها درنگ کرده بود و گفته بود زینب، سیل کن زینب، سیرداغش فراوون باشه. قابلمه عدسی رو پریموس بود، کمی دورتر از دنور رفته بود روی بام، باز از بالای چینه ی بام گردن کشیده بود و گفته بود فلفل سیاشم زینب از اول بریز که خوردش بره. زینب پای تنور تنها پیشانی بلند و موی بلند و آشفته حسن را دیده بود. باز صدای حسن آمده بود. میگم الماس، فیساب مرده کی روغن کارش تموم میشه؟ خوشو شد؟ و الماس گفته بود: تموم شد بابا الان میرم. و پایدان را گردانده بود و در صدای نرم گردش زنجیر و گردش چرخ عقب صدای زینب را شنیده بود بعد از معماری یه برو به زن مسلطنت بگو اگه زحمتش نی فردای تکپا بیاد اندازه جومش بگیرم و چرخ عقب تند گشته بود تندتر و تندتر. حواست حواست بامون الماس بگو بیا تا و صدای انفجار از بام خانه آمده بود تاریک می شود شعلای گاز شرق آسمان را رنگ نارنجی میزنند. تیغه نازک ماه شب چهارم در قرب آسمان سفید است. بلنگوی مسجد امیر خرخر می کند. بعد از آن روی شهر خلوت پرپر میزند. میر جوادقا سوختزار فانوزهای مرکبی را میگیرند. زار تعیمه می بلکه تم پیدا نشد، کنا داره شب مید اینجا خدارسان میگوید، باید پیدا بشه زارتیمه تایمه، که نمیشه دفنش کرد. ارون بقال میگوید، اقل کم ببریمش مسجد تا سهر اما پیرالی یکی از فانوس ها را بر می دارد و از خانه میزند بیرون الماس میرود همراهش رگبار ضد هوایی چند لحظه خط سرخ بر دل آسمان نقش میزند. از کنار خانه سبز علی تواف می گذرند. در خانه بسته است. باد یا موج انفجار سقف پلیتی انبار پشت بام را از جاکنده است. پلیت از لب بام سرخ خورده است تو کوچه و معلق مانده است. باد گاه به گاه می و صدای رگبار دور مسلسل می دهد. نور فانوس مرکبی لحظه به لحظه رنگ بیشتر می گیرد. در خانه مندل چاپار بسته است. مندل در را باز می کند. دهانش پر است. چربی دست را با شلوار پاک می کند. خیره ایشالله. ما الان اومدوم. به چا گفتن. میروند توی خانه. شیون زینب نمی‌آید. مندل می گوید همین جامعه قبل بود که با ام اومدیم. اومدیم که... لا اله الله از کازرون آمده بودند. از راه بهبهان. آخه چطور شد که ای تو شد؟ الماس می گوید. نفهمید و یه دفعه صدا اومد. صدا آمده بود. زینب شتاب زده رفته بود پشت بام. تو پله ها پاش پیچ خورده بود و لنگ لنگان، رسیده نرسیده جیغ کشیده بود و قش کرده بود بعد الماس رسیده بود و دیده بود که پدرش مثل ستون بلندی دمر افتاده است و دست چپ را انگار دزدیده باشد زیر تن پنهان کرده است و خون از زیر سینه و زیر شکم بزرگش بیرون زده است الماس دو دستی به سر زده بود و فریاد کشیده بود و نفهمیده بود که چه وقت و چطور فلفور جواد آقا رسیده بود میرجواد آقا سوختزار لنگه در نیمه باز خانه دایره‌شنا را پس می‌زند یا الله می‌گوید و میرود تو زارطیمه همراهش است خانه بوی ماهی سبور تنوری میدهد. همزه هنوز نیامده است دایره‌نا جلوی اتاقش فرش انداخته است و چای دم کرده است برمیخیزد فانوس را برمیدارد و پاکشان پیش می‌آید بسم الله خال جواز، همزه کی میاد دایرنه. نمیدونم خالو باز رفته تا خزلیه. می میگوید. اجازه دارم خودم بگردم تا همزه میاد. دایرنه میگوید. صاحب اجازه ای زارتاییمه بسم الله. آخر گناه داره میت بمونه خاک نمیشه. صدای بستن در خانه میآید. بعد از تو دالان صدای سنگین پای همزه میآید سلام خال جواز خیره ایشالله خروس نور نزدیک فانوس را بر نمی‌تابد روکیسه که پشم سکنج خانه جابجا می‌شود و بال می کشد. از پله بام می روند بالا کمرکش پله ها همزه فانوس را بالا می گیرد و تو زغالدانی را نگاه می کند. چند لحظه درنگ می کند و گوش می دهد اخم همزه تو هم رفته است تو چیزی نمی شنفی خال جواد آقا میگوید چیزی یعنی چی؟ نفس گربه نی جواد آقا سوخت گوش می دهد. دارد حالش به هم میخورد ترش دهان را قورت می نمیدونم شاید ها شایدم نه زار تایم می کند لا اصلا خورخور نمیاد همزه از همان جا از کمرکش پله ها داد میزند دایه ای گربه جا به چهاش عوض کرده؟ نور زرد فانوس صدای رعنا از دالان می زند تو پله ها. بعد صدای دای است گربه؟ ها دایه گربه دای تو دهانه پله ها چراغ را تا پیشانی بالا می برد گیس سفیدش از زیر لچک پیدا می شود. بینیواره بر پره دماغ بزرگش پیدا می شود و خط سبز خالکوبی از زنخدان تا زیر لب کبودش پیدا می شود ها نه نه نمیدونم انگاه ها جابجاشون کرده میروند رو بام میرجواد آقا که رسیده بود روی بام دیده بود زینب قش کرده است دیده بود الماس روی زمین پنهان شده است و به سر میکوبد دیده بود حسن مثل بلوت تنومندی روی شکم افتاده است و تقلا می کند تا پیشانی را از زمین بکند. اما سر بزرگ حسن با موی بلند آشفته بالا می آید و باز به زمین می خورد. است افتاده بود پای کبوتر خانه. چاقو دورتر افتاده بود. کونه سیگار با پا له شده بود. خون به چینه ی بام شتک زده بود و ترکش ها کاهگل چینه را جایی خراشیده بود و جایی گود کرده بود. از این طرف خالو جواز. همزه بالای کنیسه را دیده است و آمده است پایین. فانوس دستش است. پیشا میرود پیش می رود را نگاه می کند. زار می گوید منزل زار لطیفم نگاه میکنیم. کنیم. همزه می گوید کسی خانه نیست زار تایمه تایمه میگوید میدونم نیست زار لطیف با خودش رفیقه از خودش اجازه دارم از بالای چینه بام نگاه میکنند. بام خانه زار لطیف تاریک است آنتن تلویزیون افتاده است در پله و کنیسه آن طرف بام است لحافدانی کنارش است زار تایمه دشداشه را به کمر میزند و از دیوار گذرد باد همه برگ های خشک کنار خانه را جمع کرده است پای دیوار جا, به جا می شود و فانوس را می گیرد تا همزه و میرجواد آقا از دیوار بگذرند دیوار بام انگار گرمای خورشید را در خود دارد میرجواد آقا که رسیده بود هوا هنوز گرم بود گردۀ کشته حسن از تابش خورشید گرم بود خورشید در غرب پشت پاره ابرتونوکی سرخ و سوزان بود شانه های حسن را گرفته بود تا بلندش کند صلب و سنگین بود به اینکه بخواهد سر الماس داد زده بود دندان های زینب کلید شده بود و جای خود می لرزید الماس کمک کرده بود و کشته حسن را از زمین از میان حوزشه خون که زیر شکم بزرگش بود برداشته بودند و دیده بودند که شکم حسن و شکم پاره شده است و دست چپش از مچ رفته است. شیون زینب یک هو برخواسته بود. چراغ خونم ووی نخل بلندام ووی از دور صدای آمبولانس می آید. بعد صدای هلیکوپتر است. شهر پر می شود از صدا. همزه میگوید زخمی میارند زار می میگوید ولک این چی اینجا همزه خم میشود به زمین نگاه میکند میرجواد آقا چوندک میزند زند تایمه سر میکشد طول لهافتانی و چراغ را پیش میبرد میبیند که بچه های گربه از زیر پستانهای مادر گردن کشیدند و هراسان نگاه میکنند فانوس را بالاتر میبرد. پوزه خونی گربه را می بیند که میخواهد خره بکشد. گربه اینجاست؟ جس میر جواد آقا پای در لهافتانی تو نور پریده رنگ فانوس ریزه استخوان میبیند و خط بریده ای از خون و خاک میبیند که بر کاهگل بام خشک شده است. میر جواد آقا یک هو اق می زند.